زمان فصل دوم پیشینیان رومی پرفسور ادوارد پیترز در کتابش تفتیش عقاید بحث قانه کننده مطرح می سازد. مبنی بر اینکه روشهای تفتیش عقاید برای اروپای غربی تازه نبودند. بسیاری از این روشها بر اصولی استوار بودند که در دوره امپراتوری روم پدید آمد. و به این دلیل از نیروی سنت برخوردار بودند و اداره مقدس آنها را به صورت کاملتری به اجرا درآورد طی قرنهای دوم و سوم گسترش اختیارات قاضی دادگاه بخش و گسترش مسئولیتهایش به تحقیق در مورد وجود جرایم و هویت احتمالی مرتکبان آنها بیشتر مسئولیت را از دوش متهم کننده برداشت و از نقش او تا حد زیادی کاست. خود محاکمه همینطور رسیدگی مقدماتی که در ابتدا عمدتا از سوی متهم کننده انجام میشد تماماً در حوزه عمل قاضی دادگاه بخش قرار گرفت. در همین دوره تغییر ژرف در روش دادرسی در قانون رومی، دامنه جرایم عمومی و قرار گرفتن متهم و در برخی موارد شهود در معرض شکنجه به عنوان یک وسیله بازجویی در سرتاسر سر جامعه رومی سیر سعودی پیدا کرد شکنجه که تا آن زمان تنها در مورد بردگان مجاز بود اینک در موارد خیانت به کشور نسبت به شهروندان آزاد نیز امکان کاربرد یافت و از قرن سوم به بعد به تدریج کاربرد آن در مورد جرایم متنوعتر و طیف گسترده‌تری از افراد به صورت امری عادی درآمد. بدین ترتیب روش دادرسی جنایی در امپراتوری روم پس از قرن دوم به روش دادرسی تفتیشی تبدیل شد که افزایش شدید اختیارات قاضی از جمله مسئولیت بازجویی افزایش کاربرد شکنجه برای اعترافگیری و افزایش به خبرچینان به منظور یافتن و به کشاندن مجرمان هرچه بیشتر از مشخصه های آن بود. آخرین انصر دادرسی تفتیشی که متداول شد اقامه دعوی از سوی خود دولت به جای شاکی خصوصی بود. شکایت به روم از زیاده روی دستگاه تفتیش عقاید دستگاه پاپ های متعددی را از سوی مقامات محلی در خصوص افراجگری معموران تفتیش عقاید نسبت به افراد تحت مسئولیتشان دریافت می‌کرد. جی جی کولتون در کتابش به نام تفتیش عقاید و آزادی یکی از این اسناد را نقل می‌کند. برخی از این سلول‌ها چنان تاریک و بدون هوا هستند که زندانیان نمی‌توانند روز را از شب تشخیص دهند. و در نتیجه به طور پیوسته و کامل از نور و هوا بی اند. در سلولهای دیگر موجودات مفلوک و بینوا در کند چوبی یا زنجیر آهنی اسیرند و نمیتوانند حتی برای حاجات طبیعی خود حرکت کنند و نمیتوانند دراز بکشند مگر به پشت و روی زمین سرد و آنها برای مدت‌های طولانی باید شب و روز در این وضعیت عذاب باقی بمانند زندانیان در های دیگر این زندان‌ها نه تنها از نور و هوا بلکه از غذا نیز محرومند مگر نان و آب بخور و نمیری که تازه آن را هم با اکراه می‌دهند هایی برای مأموران تفتیش عقاید نیکولاس ایمریچ بسیاری از اصولی را که مأموران تفتیش عقاید باید از آن پیروی می‌کردند ارائه و توضیح داد بنابر یکی از این اصول به نقل از کتاب جی جی کولتون به نام تفتیش عقاید و آزادی یک روش شکنجه را نباید تکرار می‌کردند اگر او را خوب شکنجه کردی و باز هم حقیقت را اعتراف نکرد انواع دیگر شکنجه را امتحان کن تا بداند که همه آن روش‌ها در موردش به کار خواهد رفت اگر با همه اینها اعتراف نکرد آن وقت می توان روز دوم یا سوم را به ترساندنش اختصاص داد یا حتی به واقع به شکنجهش ادامه داد اما بدون تکرار چرا که شکنجه ها را نباید تکرار کرد مگر شاهد و دلیل تازه علیهش اش اقامه شود که در این صورت به راستی می توان شکنجه ها را تکرار کرد اما در مورد ادامه کار منعی وجود ندارد یک حکم دینی هنگامی که دستگاه تفتیش عقاید گمان میکرد که در شهر معینی بدعتگزاران حضور دارند یک حکم دینی خطاب به ساکنان آن که در میدان اصلی شهر گرد آورده شده بودند اعلام میشد. این حکم کاملا نمونهوار برگرفته از کتاب پل هوبن به نام تفتیش عقاید در اسپانیا در سال 1519 در والنسیا در اسپانیا صادر شد اقدامات مورد اشاره در این سند، تکالیف دینی سنتی یهودیان در روز شنبه است. به همه مسیحیان با ایمان از زن و مرد، کشیش و راهب و پیشنماز، با هر موقعیت و رتبه و مقام که توجهشان به این حکم، به رستگاریشان در سایه پروردگارمان ایسا مسیح خواهد انجامید که رستگاری حقیقی است که آگاهند که از طریق دیگر فرامین و احکام مسئولان محترم تفتیش یعنی اصلاف ما به آنها هشدار داده شده بود که در ظرف دوره معینی در پیشگاهشان حضور یابند و آنچه در مورد شخص یا اشخاصی اعم از زنده یا مرده میدانند دیده یا شنیده به سراحت بگویند. اشخاصی که برخلاف آین مقدس کاتولیک چیزی گفته یا کاری کرده اند. به ترویج و اقامه شریعت موسی یا فرقه محمدی یا آیین و مناسکی از آن دست پرداختند یا مرتکب جرائم گوناگون بدعتگذاری، اقامه مراسم جمعه و شنبه از جمله پوشیدن لباس‌های زیر تمیز در روزهای شنبه و بتن کردن جامعهایی بهتر از روزهای دیگر، آماده کردن غذای شنبه در روزهای جمعه در غابلمه‌های آرامپز با آتش ملایم شدهاند. اشخاصی که در عصرهای جمعه و روزهای شنبه مانند روزهای دیگر کار نمی کنند و اشخاصی که برای روشنایی از چراغهای تمیز با فتیله های تازه استفاده می کنند.